چهار شنبه ها اصل بانو، بله نمیپرسم بیداری تا جواب بدهی گیل مرد کم عقل آیا اگر خواب بودم به این صدای بسیار آهسته تو جواب میدادم دادم؟ بخانم مثل هر گیل مرد کوچک اندام دیگری خونکی و با وجود این زندگی من را واقعا گرم میکنی کنی بخان صدا، ادراک حرکت زرات هواست. هنر اما، ادراک حرکت زیبای ذرات تفکرات و عواطف است موسیقی، نوعی موزون و دلنشین از زرات صداست. گفتار خوب نیست. نقاشی، ادراک حرکت مناسب زرهای رنگینه هاست، حتی رنگینهای سیاه. سینما ادراک انواع حرکتهای اندیشمندانه و زیبایی است. چاری نیست؟ باید زندگی را با انواع چیزهای پاک خوب انباشت که موسیقی که نقاشی، سفالگری، بلورسازی، از دیدگاهی سیاسی به دردها اندیشیدن و نوشتن صادقانه اگر نه هنرمندانه از جمله همان خوبهای پاک است. و البته ورزش به شرط آنکه ورزش دوستی را به ورزش بینی تبدیل نکنی و همان فرصت ناچیزی را که گهگاه به دست می آوری صرف نشستن پای تصویر نما و دیدن برنامه های ورزشی نکنی از ورزش هیجان و استرابش به تو نرسد نشات و سلامتیش به دیگران چشم باید به فکر پیکر سازی هم باشیم و ترجمه تو که زبان فرانسایت اینقدر خوب است؟ هر روز چند خط فقط چند خط گیل مرد شلوق نمیبینی که تمام اوقات فراغتم را به بافتن قالیچه زرع و نیمه تو مشغولم این دومین قالیچه توست یک روز ابرکاری ماندگار خواهی آفرید که آن را کنار آن قالیچه نخنمای رنگ باخته صفوی خواهند گذاشت نگذارند هم مهم نیست اصل برای من پر کردن زندگی است به زیبایی نه خلق آثار ناب ماندگار تو میگویی میخواهم همراه تو دف زدن را یاد بگیرم نه بهتر است که تار بزنی جلوی دکان کوچک من حق نداری دکان باز کنی اصلا کارکارها دیگر شاگرد تازه قبول نمی کنند. باشد تار میزنم، مثل عاشقهای آذری تار را هم باید ببری بالای سرت بزنی ایستاده آزری هم بخانم؟ طفل محسوم نمی شود که آزری بزنی و گیلکی بخوانی می شود؟ چرا نشود؟ دستکم امتحان که می توانیم بکنیم میروم پیش بهروز دولت آبادی عاشق. شاید وقت داشته باشد که نواختن تار به شیوه ها را به من بیاموزد چهار شنبه ها دیگر چه کار می کنیم؟ سوای همه کارهایی که انجام آنها را بر عهده گرفته ایم هم به یک اثرگاه میزنیم موزه همه میگویند موزه من نمیگویم اثرگاه هم فارسی هم با بامعنی من از واجه بیگانه بیزارم آن واژههایی که در اصر استعمار به ما تحمیل شده است مثل جای پای اجنبی است روی فرهنگ ملی ما جای پای گلی کثیف و متعفن به دلیل آلودگی روی یک پیراهن کاملا سفید معطر چندشام میشود. یاد آن جاهلی میافتم که گفت زبان فارسی ظرفیت ندارد و به همین دلیل هم میخواست به میهنش خیانت کند خب هفته پیش ما دوشنبه به اثرگاه آبگینه رفتیم آن دیدار گذرا برنامهای خارج از برنامه بود این جزو برنامه رسمی چهارشنبه است همیشه چهارشنبه ها دیدار از یک اثرگاه مگر در تمام این شهر چند اثرگاه داریم حدود 20 تا بعد از 20 هفته چه کنیم پناه بر خدا آیا به خاطر آنکه یک روز آب دریاها تمام می شود امروز حق است که از راندن بر دریاها صرف نظر کنیم تماما تکراری است اما عیب ندارد هنوز از بر نشدم، بعد از بیست هفته دور می زنیم. با یک بار دیدن، هیچ اثرگاهی دیده نمی و هیچ اثری بعد از آن که دوره کردیم و دوره کردیم و دوره کردیم و همه درسهای من را از حفظ شدیم، چه باید بکنیم؟ به دیدن اثرگاه های شهرهای دیگر می رویم. هر چهارشنبه نه، چهار شنبه من را پسنداز میکنیم و یک جا خرچ می کنیم. و بعد از اینکه همه اثرگاه های ایران را دیدیم، همه بناهای تاریخی را می‌بینیم. نه به عنوان انصری صرفاً تاریخی، بل چیزی که اراده آدمها حرکت به آنها حیات بخشیده است و مکان‌های دیدنی سرزمینمان را. برای این کار دیگر یک عمر خیلی کم است. از این گذشته، ممکن است به فکر ایجاد یک اثرگاه تازه هم بیفتیم با چه چیزهایی می‌خواهی اثرگاهمان را پر کنی؟ با دست نوشته های هنرمندان بزرگ معاصر چون این نقشه ای دارم. نه سرگاه خطاتان و خوشنویسان که جایگاهی ویژه خط و نوشته های دستی بزرگان هنر و فرهنگ ملی نویسندگان، شاعران، نقاشان، موسیقیدانها و میدانم فکر زیبایی است طرحش را هم دادم و بعد خیال دارم پیشنهاد راهانداختن یک دانشگاه غیر متمرکز فرش را هم بدم فقط برای بانوان دار فقط جلسات آموزش سریع بافندگی و طراحی فرش و بعد دادن امکانات به تمام زنانی که دوره نخستین را با پیروزی گذراندند امکانات در خانه هزاران هزار زن در اوقات فراغت خود آهسته آهسته قالیچه می بافند و هر ای که تمام می کنند و تحویل دانشگاه می دهند در حکم چند واحد درسی است که به پایان رسندند و به جای آن که شهریهی به پردازند دستمزدی هم می ستانند. فکرش را بکن که چه قوقایی می شود زنان تحصیل کرده و فرهیخته دیگر زمانکشی نمی کنند و در بتالت لحظه ها فرونه می روند و بیکارگی آنها را گرفتار سرخوردگی نمی کند. موظف هم نیستند که کار را در زمان معینی تمام کنند و تحویل بدهند. آنها برای دریافت کارشناسی باید لا شش قطعه قالیچه تحویل بدهند. در این باب خیلی فکر کردم. فرش مظهر صبوری ماست. سبوری ملتی که هرگز تسلیم نمی شود و هرگز به بد رضا نمی دهد. فرش فقط زیبایی نیست. فلسفه مقاومت خاموش و چند هزار ساله یک ملت است. همراه با زمزمهای ملایم که خاموشی را تعریف می کند. از پله ها بالا می رویم. سکوت سرد سنگ های خاکستری، چه وقار مغلوب کننده ای دارد اثرگاه ایران باستان در اینجاست که انسان ایرانی زمان را به زانو در می آورد بر پای ایستاده و بر پا مانده همه چیز از زمان می ترسد زمان از انسان ایرانی تراشنده سنگ ها از طرف راست می رویم ما قبل تاریخ دور میزنیم. زنیم طلوع تاریخ برمیگردیم و بالا میرویم حال خواهی دید که یک عمر هم برای خوب دیدن این مجموعه کافی نیست تو زیر لب میگویی اینجا تماما حرف از تاریخ است تو انسان ضد تاریخ چگونه در چنین جایی که حسی تاریخی در آن جاری است احساس آسودگی میکنی آهسته جواب میدم، بعد بعد که از اینجا بیرون رفتیم توضیح میدم، اما تو هم فعلا سعی کن که اسیر این حس تاریخی کاذب نشوی، بلکه با حسی فرا تاریخی ارتباط برقرار کنی، حرکت،